خالح طیبین و طاهرین المعصومین داره مجمعین اللهم و افیرون و افیرون مجمعین رحمنا و که رحمنا شده که که مشترک ما بین دو اون تا مفهوم با یا به اخرى دخرا آیه رو به میشه یا نه. اجازه بدین. اخیراً که این مسئله دو اینه یک جهتش اینه که در واقع مفهوم ذکر به خاطر اینکه یکی از احکام مخفیه یک جهتش هم به خاطر عموم و توضیحات از شکه روی این مسئله این یادچاره یا مفهوم بنام بر حکیتش فقط که متن سباییه تخصیص آم رو داره یا وقتی که آم آمد یه اصلا مفهوم از خواهر می آسده. یعنی به عبارت مخراج دلالت مفهوم مثل دلالت آم نیست مثل دلالت منطوب نیست حالا فرض بفرمید شبیه اصل عملی با امارات مثلا اصول عملیه خب اصول عملیه پس این که در شما بود و باشه به استثاثر رو جمعه میکنه اما اگر ببایتی بیا دلیلی بیا دیگه با وجود دلیل جای وجود به استثاثر نیست مفهوم هم بخواد بگن این طوره بر فرصم مفهوم خود جهد روشه ایچی شبیه اصل حملیست اگر در مقابلش ای اموم بود اموم برگوه مقدر میشه بحثی که مطلب شده ایه. نظر از خیلی این بحث در به این نکته که حدود دلالت مفهوم تا چه حدیه من سابقاً از کرم در کلیه مقایی حتی رسه مفهومه یک نوع اشعار در طلاع وجود داره بحث نیست از وقت زیدن العالم. اشعار داره که زیدن العالم اشعار هست اون که در مفهوم در حد بحث میکنه این در وصول وصولی این به حد ظهور و آیا این اشعار در حد ظهور و خودجیه در حد هست لا اصل اشعار بکنی میشه اینهای کرد و چون دلالت مفهوم، یک نوع حالت ترقی از اشعار به ظهوره این بحث مفتر میشه که اگر در کلام یک عامی بود این ترقیق پیدا نمیشه در همون حده اشعار نمیشه دیگه در حده زهور نمیشه با وجود آم دیگه به زهور نمیاد مفهوم منعقد نمیشه آم صلاحیت داره برای که رو مفهوم رو بگیره انعقاد عباده زهور. حالا تخریباتش رو باید ارز میکنم پس نکته بحث در حقیقه از نظر الله حاضر اصولی اینه و کردیم به توضیح بیشتر بحثی بیزه ارز کردیم در کلمات ادرسون نه اصولاً دلاغت کلام رو یا منتظم میدونن یا قیلت منتظم منتظم رو هم بحث کردن آم و خاص رو ظهور سیهه علاله این بحثی که ارز اینو دلاغت مونتظم ظهور لحظی رو منتظم بکنن ظهور غیر منتظم با هم ارز که چهار قی در ایمان ایما و بشاره و تنبیه و, و مفهوم چار که یکی شنگ مفهوم براتی خود باز ایما یه که بی مفصل علماء احل سنت اینجا بحث کردن اون مقدار و با اون تو بحث نیامده در بحث, در بحث احل سنت بیشتر مثل نصد که آنیم سما راجعه کنن را اگه فرصه که رو شد بخونیم به ع در حقیقت این بحث ریشش در اینجاست مثلا اگر ترمون اینجا هرکن خواست من به نبین یعنی. فرص به ما آیه مبارک مفهوم داشته باشه چون الان فرص ما بر سبوت مفهوم اگر مفهوم نداشته چیزی که بحث نیست اینشالله این خواهد آمد بحث های بسیار مفصلی چه اهل سنیت و چه علماء مفهوم در اهل سنت که حال رو خبر آدل هستن تعد بودن به همه آیت هم از این خدایی و ملخص نظار رو خب هر کسی ایک صحبت ما این نظار رو مختصر و ملخص کردیم در اینکه مفهوم رو آیه صادف در با قلیان در دو شن. اون دو کلمه هست که سیار آیه و مسار آیه و اون به اصطلاح روح هایی آیا نازه است به حال فاسق که با فاسق چگونه در خوب یکی از احوالات فاسق یا سیاه هایی نازه است به خبر و نبر و حال نبر این دو کده می مستنزد راحت اگه, اگه محاییم تکر کنیم سکرش بگی راحت مثلا پس این فاسق بیشه سلام نمیشه داد این یک حال فاسق فاسق بست که پشتش نمازن میشه کنی فاسق شهادتش رد میشه این احوال فاسق یا آثار ایست که بر فاسق برمشه یکی از آثار فاسق اینه که اگر مطلبی گفت یا تبعی نفی خبره هواقف بکنیم بررسی بکنیم آیا آیه اینه میخواد بگه و این شد مطلب محلی ارفی ریشه اون باید خود به اون نکفرد و ارفی اینجا اکام فاسقان ای به نور انسا آیه نازر است به یک به لحاظ فاسق لذا این مفهوم ندارد آیه مفهوم نداره شون که فاسق رو دارد از احکام فاسق نهی که در خبر تو تبریه رو میشه تفخصش برسیدش یا نه این آیه مبارکه نازر است به خبر بوده آیه سیاه آیه و شواهد آیه نازل و خبر و این که خبر رو اگر فاسق بود در بیان اون شایدم معلومه اینه که خبر رو اگر غیر فاسق تو بیان باشه نیز اگر میخواین در رابطه که حدود مثلا 13 قرن 14 قرن علما اسلام 13 قرن 12 قرن اسلام اسلامش کردن بحث بکنید خلاصه به بحث اینه من در دو کلمه مختصر اون بحث سنگین آیه نور رو برای شما مختصر کردیم آیه سیاه و مساق آیه برای بیان یکی از آثار فاسبه که تباییز در خبرش باشه یا مساق آیه نازر است به تقسیم نور و خبر مثلا آیه مخواد خبر رو دو بکنه خرموزن اون آلی خبر اکمال فاصله توقف روشه تو خواهی نخواهی خبر اکمال فاصله قادره توقف نمیشه بسیار یک ایک شد میشن به نتیجه نرد کلاه مجمل در حضیت رضا میمیشن این را ثبون دیگه شما احوال فاصله رفت نداره که. به رفت شده با بادر نیست ناظر با. من شده برد. ما خود ما عقیدان ما معنی ما اعتقاد اونی که این آیه مبارکه ناظرت به همون مسئله فاسد و اصولا ناظر نیست به مسئله به اطلاع و تحسین نبه اصولا این ناظر به مسئله فاسده یعنی به اعبار از این وقت را اگر فرض کردیم فاصلی داریم کنیم فرض مثلا خود نکه شراب میخوادیم ولو کاری به مسئله خبر و صرف خبر میده که شراب خواه معزازه که اگه محکدی باز هم فراق خوف را کنیم ولو ممکنه این آداز صادق و لحظهی شراب میخواد و دروق نمیگه راست دوه چرا چون کسی که یه جهتی از اسیان کرد و از اطاعت خدا خارج شد ممکن است در خبر هم خارج بیشه بگیه در معرض احتمال هست ولذا تبعیدانه در خبر فاسق به لحاظ این نیست که فاسقی که دروح میه خود به قطع این ناظر رو بگیم نکته هست فاسق ولو به دروح نباشه اصلا فسلش به شعب باشه به غیبت باشه باز هم شما تبعیم بکنم این آیه ناظر رو بگیم چون فاسق طاعت الهی خارج شده در خبرشن احتمال داره خارج بشه داری؟ مال هم خبر داره. در بله. خب دست میگرد داریم؟ سیاه آقایه خود هم و خبر خب این الان عمل به فاسق این درش این شبهه هست که این در اینجا خلاف بخشه باشه چون جهالت ممکن است معنای عدم علم باشه تا این اصولیات تصوره اما احتمال اخری جهالت سفاهت باشه محمد به یعنی به عبارت دیگر عمل سفیحانه باشه شما اگر یعنی جمع در مقابل عقل نه در مقابل علم چون جمع در در مقابل عقل مخصوصا جهالت حتی جهالت ایما را... رجل رکت به به جهالتین، اون اونجا جهالت معنی جهل اما جهل این جهالت دلوقت عرب معنی صفاهت این صفیحانه است که شما به خبر فاسق اعتمال بکنید چون این شخص از ساعت خدا خارج شده امکنید تو این خبرم از ساعت خدا خارج شد چون؟ بلا؟ و اگر این شد ناظره به حال فاسق شد این از کردم بحث مفهوم و تشریح ما یه مشکلی داریم در لغت عرب که اختصاص به این مورد نداره و اون اشکال ای این که در لغت عرب که وقت دقیقا برای این معانی مختلف این زرافت ها رو در نظر نگرفته مثلا اگر قضیه مسوط رو برای بیان موضوع باشه اونجا هم این رو به کار میبره مثل این وکر این رو زده فخته اگر مثلا در لغت عرب هر زی که قضیه برای بیان موضوعه این به کار میبردن یه لفظ که بود اون خوب بود پس که کار دوست کردیم من در بحث محکوم این رو دادم چون گاهی وقت گاه مفهوم در حقیقت دیگه دارد. چون تعلیق نیست چون نکته مفهوم اصولا تعلیقه یعنی فرض سه حالته فرض موضوعه فرض حکم فرض یک حالت متوسطه با بودن اون حالت متوسطه حکم بار میشه با نبودنش با میشه محکوم که اصطلاح چون پشتینا داشتیم این استلاحه که ما گذاشتیم غیر این استلاحه منطقی ها استلاحه اسمش بیمون قضیه سلاسیه اگر قضیه سلاسیه شد مفهوم داره وقتی میگه انجا که زیدان و اکرمهو تحیل کرد اونجا از کردیم این اکرمهو یک هیئت داره که درست بروجوب میکنه یک ماده داره که اکرامه این ماده رو استلاحهن در قصور داری بهش متعلق میگه گاگرم بهش موضوع میگن حالا به اینجورشون اصطلاحاتی که ده که موضوع شده من نیم خواهدی پس اکرم ها یه هیئت داریم که این مفادش حجوبه یک ماده داریم که اکرامه که متعلق میگم یک ها داریم زمین داریم که گاگرم به این موضوع میگن یا متعلق و متعلق اینجا اینجا رسال میکنم وجوب اکرام رو نسبت به اون زمین ببینید وجوب اکرام این خود نسبت به ها. در ها اگر فقط وجوب اکرام با زمین باشه میشه سنایی اگر غیر او چیز دیگه اضافه بشه میشه سلاسی یعنی وجوب اکرام برای زید در فرض مجید ببنید. این فرض مجید که آمد مفهوم دارست میکنه اگر قضیه این استلاحه بنده به این در یک هیچ ایتا نمخم ناری و دوری ولی اگر قضیه سنایی شد مفهوم نداره. اگر قضیه سلاسی شد مفهوم داره. این رو زقت ولدن فخته نماره. اینجا قضیه سنایی میشه این رو ولدن اینجا قضیه سناهی است. یعنی اون بچه رو فخت نبکن یکه حالتی میسیدی در روزن وجوب برای بچه ولذا این مطلوب و عدات شرط اگر دقت بکنیم در حقیقت محقق های فخت نبکن حالت نیست اگر مطلوب و عدات شرط حالت باشه قضیه سلاهیی میشه اگر محقق وجود باشه قضیه سناهیی میشه آیا در اصول فرمودن قضیه شرکیه مسوغی به بیان موضوع اینجور گفتن آقایم درست ما میان غلطه آیا اونجور تغییر کردن این حقیل صورتی اینجور تحبیر کردیم اگر قضیه سنایی شد مفهوم نداره اگر قضیه سلاسی شد مفهوم داره مراد از قضیه سلاسی یعنی یه وجوب اکرام هست یه ذهب هست یه حالت در وسط هست این وجوب اکرام معلق شده به اون حالت خب اگه اون حالت هم نبود و اون وجوب اکرام برگوشی بیشه این بیشه برخوب اما اگه این روزهت ولدن فخته نهو اینجا قضیه سناییست این وجوب خطان برای بچه یه حالت در وسط نیست مطلوب و عداد شهر روزهت این حالت نیست برای بچه این محقه به وجودشه باشه شد مطلب؟ کاملا بگیم واضح باشیم ما در بحث و مفهوم گفتیم مشکلی که الان ما در لغت عرض داریم خوب دقت بکنیم چون مثلا شاید چینده باشیم این هم فقط هستن که یه لغتی رو برد یه لغتی که سامان توی اون که در هم درست یه مال یه لغت میبیند که این مشکلات لغتی نداشته باشیم مثلا در لقت حرم برای این قضیه سناییس یا سلاسیه ازادشیه که امری فرق نگذاشته اگه فرق میذاشته ما اینجا مشکل نداشتیم خوب در قرآن که لکه فرقی یه در لغت عرب هم برای این جاعت زیدان فرقیم ها این بکار میبرن هم این رو زخت ولدن فخت این بکار میبرن اگر این رو زخت ولدن بود مثلا ازا رو زخته خوب در این چون ازا موقع مبنی سه معنا داره هم شرکیت هم زرکیت هم استقباله بعد هم سه که گاهی از شرکیت خواهی از زرکیت باید مثلا اگر در موقع تحرک این جو بود با این رو زخت باز یه ادام که یه ادام بگه معنی شرکیت نداره معنی زرقیت اگر معنی ظرفیت داره اون وقت دیگه باز مگر مشکل کار این سوالی ای که آصولی که میشه میخوان اینجا اكو فاصله اگر احوال فاسد باشه از قبیل قضیه مسوق برای بیان موضوعه یعنی فاسد خبر در یکی از آثار فاسد اینه که در خبرش تبیان بشه این نکته این ناظر به حال فاسده یعنی نکته دیگری ای نداره این اینجا این قضیه برای این جه جانه حالا کیف ما خام من هم. یه خیلی وارد خود داریم چون اگر مسروق رو یعنی موضوع باشه اما اگر برای نبه باشه نه باشه. اگر نبه باشه اگر آدم ذهن واقعی باشه که فاید داره که فمعنال آیه اندن نبه ایراکان اندن جایی دیگه فاسه این مطلب دیده که صاحبی فاید این خود عین مدعه هست <تصفح> مولوان استضحاب تمام مدعه همینه یعنی اون نقطه خنمی علیم فرض را در که اون اون نکات فنی و زرافت فنی تنبیر و اخیلا نظر بدیم. خوب شد بحث آیه نظر رو چیزو بشن که لا مفصل بود. نقطه 1 کلم از اون نمیخواد اون عدد مفصل اون نکته اساساً میزنه که یک کلام با اون سیاق و دلالت سیاق معناش واضح میشه. مسأله کلام. اصلا مسأله کلام. کلام برای چی آمده دو احتمال رئیسی درش هست. یک کلام مصد بشتر این که حال فاسق رو باید بکنه مثلا میگه فاسق خود سرش شما نخونه اینکه نداره فاسق مثلا شاهدش قبول نداره در اینجا میگه فاسق خبرش فحص کن در, خبر، در خبرش بگید فاسق پس این نکته نظر به حال فاسق داره لیس الله نکته دوم که نه این نظر به حال فاسق نداره شارع میخواد تعبدن به ما حال نبع رو بگیه نه حال فاسقه بگه آه خبر رو کجا قبول بکنی کجا قبول ندونی اگر فاسق بود قبول نکن. خب تو بیدتا مخموم اگر آده بود قبول کن. میشه سلسلی لذا این خیلی راحت میتونیم در خونه فکر بکنیم خودتون که آیا مساق آیه شرح حال فاسده؟ اون محبوم ندونی یا آیه شرح حال نبعه و تقسیم خبره ناظر به تقسیم خبره اگر ناظر به تقسیم خبره معلوم بشه نمیشه کراهت تنسیبو به هر دو می خوره مشکل حالا اگر ما فرض کنیم من بحث مختصری گفتم چون ما در بحث اون طبیعت اینجوری هرچی از بحث اون از اول تا اصول یک اشاراتی داشت میکنیم چون تو بحث افطوریه که اگه بحث نبره ناظر نشه دیگه خیلی الان باعث مطلب واضح شد خیلی روشن شد که سر اخلاف چیه؟ پس این که در کفایه ورده سمعنه آیا اندن نبایده کنه <تصفح> که ایشون رو برده یعنی مدعا این ایشون آورده خود که آیا مفاد آیه اینه یا مفاد آیه آنه خیلی خواهد اگر قاعد محصوم مشکل کار کجاست اگر قاعد مفهوم شدی این محکوم هم دیگه بنابراین معنیشه میشه که نبعی رو که آدمیاره شما تعبودن قبول بکنید خب سوال. ولو موجب به نشه ولو موجب رسول نشه این معنی کلامه ببینید من همیشه گفتم در این بحث وجود خبرم ولی که های بحث رو از روشن بشه ما اگر فرض بر این بکنیم که این فرض درسته اوغلا به خبری که 90 درصد وصول سوگه عمل می کنه. این درست این سنوشون خود جهت روشن شد اینه که اگر یک جایی سر خبر بگو درست چون سقه از است 90 برای ما پیدا می شود جای برزن. با خبر این آی 90 درصد برای ما پیدا شد این جای برست هیچ کدر از اصولی سنوشیه رو نیست بحث اینه که هر یعنی این سیده فرم اول 90% نشد سو 60% مثلا یک خبر صحیح داریم یعنی بزرگان اصحاب ازش ازشو اعراض کردن اون کسی یعنی بحث در خبرم برای اون تقریب شد تقریب دیگه زیاد در این تقریب نشد. بحث اینه اون سیده فرم چجوری شوری کنه سهه خبری رو به این طبعشون سهه بود اگر گره ایتان درصد ده درصد میشه؟ سهه خبری رو آورد درصد پر کرد خود سهه گاهی نبر درصد این درش شرک کرده چون اصحاب اعراض کسی کش عمل نکرده سوال نه دیگه این بنابراین مصوب این از این میخواد نه این تضاره بخوادی مثل حال داره اون سی درصد رو به بنابراین ققال این میشه حجه تعبدی اگر که چی آمد گفت این سی درصد رو شما تعبد بکنید برداری میشه تعبد تمام اون ذرافت بحث حجه خبر این پر کردن توی پیشوان نمیشه فکر کنید فکر اینکه عادل خوب دقت بکنه آدل اگر خبر رو 90 درصد درست به خوردش بده عادل از متررع است و داره تقوا داره دروغ نمیگه ما مثلا 90 درصد ما وصول پیدا شد حالا اگر عادل خبر آورد برای شو 70 مشکل اینه این 3 درصد رو تمام بحث حجیت خبر به این بگیم برمیگرده این سی درصد رو چطور پر بکنیم؟ این سی درصد خبر آده ایتون مشهور عهد سنت قائلند خبر سرم که هم مثل آقای خوبی از علمای ما قائلند این سی درصد رو چی پر بکنیم؟ این روش این فکر حجیت رو روی 90 درصده حجیت تعبودی این سی درصد رو پر میکنه و لذا هم مرحوم ناینی از کرده این حجیت رو به معنای تصمیم کشف یعنی این کاشفیت شخص درصده سی درصد رو تعبودن پر دیگه چون درصد بیان کمیت می برای تعبودش بوده رو اون حالت کسیدی رو تفسیر با حالت کرمی بکنن این تبدیل کمی و کیفی خیلی موثره این سی درصد اهل سنت که قائل با وجهت خبر عدلن میاند سی درسد آیه خور چون به این که اگر خبر را عادل اوورد قبول کن تبیان نکن قبول کن این سی درصد خبر این میشه تر اونا که میگن آیه مفهوم نداره میگه این 30 درصد پر نکرد پس ما باید همیشه بعدمون 90 درصد می‌ندازیم 60 درصد حجت وقتی خبر واحد حجت نیست تعبدن یعنی باید دائما درصده 90 درصد خود خوب روشن شد بحث تصورش خیلی بحث لطیف و روشن شما هم کرد الان ممکن بحث بکنید اینجوری باید بحث بکنی اون سی درصد رو چجوری پر کردین؟ اون سی درصد رو؟ اینا میگن آیه نبرد اهل سنت میگن که آل بزرغا اینا آیه پر کردن. بعدش هم روشن شد که شنو پر کرده. معلومه آیه و ما در واقع اعتراف کردیم همون خبر رو که نقل کرده اگر ذعیف نه عضو در درصد در, در, در ما پیدا میشه. با سیره اوغلا یعنی سی... با با سیره اوغلا چیزی اضافه بر شخص چون سره بود شخص درست پیدا شد سیره اوغلا نمیاد چیزی اضافه بر درست بکنه کار سیره پر کردن مثال توضیحی <تصفح> <تصفح> در بحث اوطوره خبر باید چون اون بحث سیره باید باشه تا بر توضیح آداشه هست حالا برای این با آیه یعنی سیره اوغلا خود جمع نه اصلا نیست, بیهنه و نیست چون اغلا به نقله هم چیزی نیست چون اوقلاب به سابتتش رو همی ش دردا بودن به سغلهز اون در دیگه بالا تیز اون 60 درصد باز به به ست ساعته دقت دق تو کفی؟ دوطور بهابقه چون سراعت شد 60 در چون مخالف اعصابت ولی اگه خبر ضعی بود در درتن درست اینکه وب بلکل کفش هم ضعف و هم عمل نکردن بیکل درفش این به خاطر به باشه که در باز بعضی دوماگردها همون وثاقت 30 درصد رو پر نمیکنه به وثاقت زحمت میشه 60 دوزگر دیگه دو دوماگردی 30 درصد دیگه درست نمیکنه اینو خوب دقت بکنید چون خیلی بحث لطیفیه من خیلی بحث وجوه خلاف رو با اون تشرح و, و زیادش ایشان خیلی مختصر کردم و اما آیه نبا خوب دقت بکنید اما آیه نبا مشکل آیه نبا همینجا روشن شد مشکل استدلال بایه نبه اینه انتصیب و قومن به جهالت این آقاعده آمده فتوس به هو علامات فعلتم ناجمی یعنی شما کار با جهل نباد انجام بدین اگر گفت کار با جهنوان انجام بدید یعنی اگر خبر عادل خود 60% اوور دیگه من اون 30% اضافه نمی کنم. این همین بحث ما هست تا مفهوم با آن. یعنی در اینجا دو تفسیر حالا تفسیر مفهوم داشته باشه روشن شده مفهوم آی مبارکه این باشه که خبر آدل اگر سی در شفت درصد عبود اینه ترحه خیلی علمی و لطیف من که چون در کلمات آیان نیست باید من موازه تکرار بدم چون خیلی احملی این میگه اینجا اکن فاسقون به نبعه یعنی اگر خبر عادل شفت درصد عبود فتبینو در خبر فاسق در خبر آدل میتونه قبول کنیم قبول کنیم چه اون سی درصد عبود یعنی چیزی که وسوغ به علم نبود میخواد قرار شده بلا فاصله گفت انتوسی و من به جهالت ده. خوب نیست شما برخوردتون با جهر باشه با حدن علم باشه اصابه در اینه برخورد برخورده جهلی نکنیم خب این خبر عادل که الان 60% 60% جهله پس تبرزه یا آیه ما بازی رو قبول نکنیم طبق صدر آیه اون سی در پر بکنیم؟ طبق زیل آیه اون سی در پر مکنیم؟ لذا این منشه اختلاف و علماء در تفسیر این آیه شده ازدهی میگن صدر آیه میگه سی در پر بکنید. ولو خود شفت در بود جمع بود به اختلاف پر بکنیم زیل آیه میگه انتوسیب و قومن به جهالته؟ برخورد جهری با کسی نکنی چون خودش گفته پر بکوین این دیگه جه این تخطی این یک معنای پس معناش اینه که اون سیلی اثر پر شد خبر عادل سر بوده دیگه شما ان مفهوم میاد نه دیگه, دیگه خارج میکنه دیگه یک تفسیر روشن شد درسته یک تفسیر اینجوری یعنی یک معنای عبارت آیه اینه صدر آیه گفت شما شد درسته رو فر بکنید تا تباییه پر فر بکنید برینو سید نور خوب این خب تعبودی باید باشدید تکدیل همی شد آمده با شواهد موجود برای من شد درسته آمده تعبود گفت پرش بکن این س درسته رو پر بکن خب حالا شد چلن نور درسته این مال تا تحمل ان و من به جهال برخورد جهلی و جهالتی و ناآگاهانه با م... با قضا برخورد جهلی نکنید خب خبر عادل برای شما آورد این میشه جهل میگه نه دیگه نه خودش چون اول با پر بکن اول شده علم یعنی مراد من علم وصوله یعنی نه که چه به وصول باش من وصول میگیرم برای یک جهت روشن شد پس این نتیجه این میشه که مفهوم تخصیص میزنه انتوسی به جهاله پس انتوسی به جهاله تخصیص خود. به چی به خبر آدم؟ <تصفح> ولو 60% بود به برکت مفهوم شد 90% بعد از این که شد درصد از جهالت خارج شد این قول کسانی که مفهوم میتواند تقصیر زدن آمر را مفهوم در مقابل این میگه نه، انتها سیگو قوم به جهاله راغا و بیجانند که جهالته تعبودن به شما گفته بیم که اون سی درصد سد برو بکنید در خبر آدی، و در نتیجه این میشه؟ ان چه به بجاتم با حال خودش محفوظه برخواز جهلی نکنید پس نتیجه چی میشه در خبر عادل اگر برای شما 90 درصد آمد قبول بکنید 0 درصد رو قبول نکنید پس به عموم عرض کردیم از مفهوم رفیت کردی یه معنا برای آری شد که به مفهوم اخذ بکنیم از عموم رفعیت بکنیم یه مانند این شد که به عموم است بکن، از مفهوم رفیق بگوییم، او سعی شدی بهت چیزی بهت واسه این در سر این قسمته، درست اینجا مفهوم داره، لکن چون بلا فاصله به شد، مطلبی چسبیده، کن افاده مفهوم مشکله در سر اتفاقا مفهوم از لحه آم را جلو می‌ده، یعنی طبوعه آم یا کلی نی هم نشون می‌ده. آی ادم داره که آویلا که سو ما برنامه نمی داریم ما داریم اون یک دلالت به اصطلاح درجه دومیه اگر منطوق بود منطوقشون قرارداد واقعی با رد منعقد میشه همین بحثه اون همینه. نه میدونم من برم اجاره مصف میکنه این بحث پس روح این بحث اینه که چون مفهوم دلالتش ضعیف سره این با وجودی که عام که بعدش میاد به هم میریزه یا نه دو صدقت درق... اصلا به واسه این مفهوم هم یک ماده قانونی نیست وقتی گفت اینجا از منفاتون بنهریم برایش منعقد میشه این دو تا ماده قانونی است یک نبع خاصه یا خصاعد نبع العادله لا خصان نقطه باشه دو تا ماده قانونی است که اینا دو تا نص قانونی اگر دو تا نص قانونی اون وقت نسبت به انتسابی و قوم من به جای تخصیص می‌شدن. یه مشکل خاصی نداشتن. مرحوم استاد در اول بحث سرودن من این بحث یواشوشه، یواشوش،, یواشوش، بعضی کلمات ایشان یک توضیح بدن تا در دریم خودمون درباره مسئله وارد بحث بشیم. در اول بحث سرودن که دلالت مفهوم یا به وضع یا مقدمات حکمت علا سال سلف ما. ما در بحث مفهوم مفصلا متعرض شدیم مجموعه احتمالاتی که گفته شده سوندترن و شیعترن قریمان و جدیدن مجموعه احتمال پنج احتمال در مسیر انجام که زیادان تأثیر ما وجود دارد با مفهوم کیفیت سواد مفهوم اینو خوب دقت میشم بحث منیمیه و هر کاری که از همون اول هر مرحله که وارد میشید انتخاب موفق بکنید موذلگی بکنید درست هم ازش احتمال اول که انصافت ظاهر کلمات قدم های اصولی ظاهر مرادشون همین بوده اون این است که این دلالت به نقره برده یعنی به عبار از در لغت اول بعد از یا بعد از حیاغ شدن برای افاده دو معنی همزمان دو معنی مثل چون در لغت عرار هر وقت لفظ به کار بردید از همون اول به شما مخواد مثل اگر اگر تا اگر گفتید میفهمید این مخواد دو تا چیز رو بگید تا اگر گفتید اگر زید آمد اکرامش بکن میفهمید اگر پشت سرش چیه پس این بحث اول که لفظ عین در لغت عرب برست شده بر دو معنا یک معنا ثبوت اند ثبوت یک معنا نفی اند در نفس این کسی که قابل برای مفهمون کسی که قابل به مفهمون چون در رأس در یک معنا ثبوت اند ثبوت پس این بحث اولی ان جرث زیدون اند در لغت عرب اگر در لغت فارسی رأس شده برای دو معنا یا رأس شده برای یک معنا کلمه الا در لغت عربی خوب دقت بکنیم مثلا بگیم من قرآن رو خوندم مثل فارسی از سوره فارسی مثلا مائده تا سوره حج تا خوب دقت الا سوره حج بگیم الا در لغت عرب دو معنا داره یا یک تا تمام بحث را یک معنی اگر بگیم دو معنا یعنی تا سوره حج رو خوندم بعد از حج رو نخوندم خود اله در موقع در عرب وضع شده برای این معنی آیا مفهوم قایت ثابتی یا نه این مراد اینه ببینید شون در فارسی بگید من از سوره ماهده تا سوره هسته سوره تو فارسیم این بحثیم این معنی این چیه و ما مفصلن حرض کردیم مثلا بناه از, از اصول ما این شده که این تا برای چی آورده شد؟ این تا برای خوندن به اصطلاح قید برای هم یا تا برای قرآن موضوعه و نظر این توضیحات مفصل اونجا از سلام هیه حتی مثل الفرش این حتی برای سلامه یا برای یه. مثلا اینجور منعبود اون شب تا طولود سلام سلامه اون شب تا طولود فرش اینجا تا قید شب میشه آنها نما فاهمه زمان آزد دیگر هم وزه این دیگه مفهوم نداده اگر قیل خورد به موضوع این او داره حدود شب رو میگه شب تا و فرس سلامت هست شبه ساله نمید به رقیه اما یا شما اینجور معنی کرده آن شب سلامت هست تا طلوع فرس متاسفانه در بقیق فارسی این واضعه در صلوق فرقی به پس شما این سلامونهی حتی مثل فرق رو اگر اینجور گفتیم اون شب تا تویور فرق سلامت است این محکوم نداریم اگر اینجور گفتیم اون شب سلامت است تا تویور فرقیم که این تا خیلق برای سلامت اون از کاری نخواهی بعد از تویور فرق یه سلامت نیست این بحثت اینه روشن شد بحث مفهوم نظر خود من اینه که اساسا قصولی اینه هدف اصاسیشون این بوده که بعضی از الفاظ در لغت عرب چرا میگم الفاظ بعضی از چیزایی که دلالت میکنه دوال حالا چون دوال بگیم مثلا هیئت توصیفی اخیران زیده خب خودش یه هیئت آیا این هیئت توصیفی دو معنا داره توصیف زیدن عالم رو اکرام بکن زیدن غیر عالم اکرام بکن یا یه معنا داره این فقط به زید عالم اکرام بکن کار به غیر عالم نداره از حیعت توصیف از یک معنی دردنیست پس بحث اول محفوم توشه بشیم که آیا این الفاظ این واژه‌ها، ها حالا حیات در لغت عرب دو معنا دارن یا یک معنا دارن این از جای اثبات شوارد لغوی و تبادر و سه از سن و سه هر. رأی از هر این رعیت بود رعیت بود این است که بگیم حالا در لغت عرب در عرب زمین عرب زنیه این مناشه روشن اصولا این الفاظ هر جا در اعتبارات قانونی یا دو مناشه داره تر بگیزن بین امور متحصله مثلا نگه اگر نفذتو تونده تو تر داری چون این ممکنه علت و معلول نپوشه جواب بده. اگر فردی مریض شود، چون اگر رو دو میاد. نه اگر میگه ما بعد اگر علت کنه میگه علین ده اصلا نیست، مشترک نیست، عامل واقعی خودشه. اما تو اعتباریات. تا گفت اگر مهمان آمد نان بخرد، میگه اون تابعه واقعی، تابعه اعتباریه. اگر مهمان آمد نان برد، یعنی آمدن مهمان بود علت نان خریدن قرار، علت قرار یعنی اگر نه آمد نه خب به قرآنه دیگه استقلال. این دیگه تو اعتباریات همیشه علت منحصره در می آمد می فهمیم اکس اگر می شد استقلالش نه می فهمیم به او اگر می شد انحصارش مثلا اگر گفت بخ... اگر مهمان آمد و زهر بود نام یه واو رو عوض. مهمان آمد علت مستقل چون شود دیگه. اگر گفت اگر مهمان آمد یا روز یا روز جمعه بود. اگر مهمان آمد یا روز جمعه بود می‌فهمید مهمان آمدن علت منحصر می شود واو علت مستقله منحصر بشه. با عدم حذف واو استقلال رو می‌فهمید. با عدم حذف او انحصار رو می‌فهمید. روشنید. نظر دهم اصلا این در سه اعتبارات بالغیه که شرع مقدس اسلام چه در قوانین بشری این هر وابسته آمد معلوم داره. اما در غیر اعتبارات تو امور متأصله. مثل این که اگر نذر شما توند است تر شما ترک اگر ترک دارید نذر شما تونده. ممکنه سر امدت در بیازون چه سر معلوم در بیاد، معلومه لیلت الصالصه در بیاد، اون تابواغه بشه. اینم رأی دوم. رأی سوم در اعتبارات قانونی هست لیکن به شرط اجراع مقدمات حکمه هست نه مطلق اعتبار قانونی باز مقدمات حکمه جاده بشه یعنی با اجراع مقدمات حکمه بگیم چون عطب باق و عطب بقوم نکرده این علت مستقل و منحصره و اگر در جای مقدمات قانونی یعنی به عبارت این خدا مجرد اعتبار خودش کافیه مقام اعتبار یا اضافه بر مقام اعتبار باید مقدمات حکمت جاری بشه با اجرای مقدمات حکمت اون وقت میگیم به این که مفعول داره و ایضا نداره و مصادره است بله این رأی سوابق ببین هر رأی رو شما میارین اگه هی از حق میشه دلدار اگر گفتیم لوحوی دلارش عرواس اگر بگیم مطلق اعتبار خبیث اگر این اعتبار با مقدمات حکمت که کهیز میخوره زعی سر میشه احتمال چهارون که این دلالت یک نوع دلالت به حاله اصلا رد که به لفظ و مقدمات حکمت نداره که شاید مراد ما و مارو خویم دلالت عقلی این باشه اصلا این یک نوع دلالت حالیه دلالت فعیه از مغوله لفظ خارج از مغوله دلالت چون دلالت مغوله است این که لفظ مرآت و برای معناه قرار بگیره این از مغوله لفظ و دلالت خارجه اون دلالت فعیه منه از چیه؟ چه رو گفت از اون زیدن الاله؟ اون دو تا زید داریم مرادش اکرام زید مطلبن بود چه رو گفت الاله؟ از سال از اون احترازی یک خیلق قیود این یه اصل و غلالی. از این که پیید حتما هتما ای داره ولی دو با ازمزیده ما مفهوم رو از حال اون میفهمیم این راه را کردیم سابقاً مرموم های برو جدی قائل هست الان مافت تقریب ایشون دلالت مفهوم رو از راه حال مرالشم از حال از حال از از احترازیت اصل در حول بیرد که احتراز. اگر مرادش این بود که زید رو مسترل اکرام بکن چرا گفت انجای زید رو تو گفت خیلی دو اصل در حول بیرد اقتراضی یکه حال متکلم بر مفهوم داره در لحظه این دلازه داره نمخدمات حجم این چی شد وچه چهارو طبیعتا دلازه حال دلازه سی همیشه از دلازه لفظی سر جمعی افتان دلازه لفظی رشت پنجام در بعد در کلمات اهل سنت آمده تمسک به اصل عملی چون اگه ببینیم جای که زیدون فرکت اما اگر نیامد آیا حجوب اکرام داره اساس البراعتن جمعیل اکرام جایی میشه اصل عملی یعنی مفهوم رو اصبات بکنیم با اصل عملی اساس البراعتن حجوب اکرام ما نداریم تو علماء ما نیدیم خیلی هرزو زدیفی این مثل حالا برای چون گفته شده انته پس مجموع وجوهی که در باب دلالت معتوم هست 5 شاست وزن دلالت سیاق اعتبار است سیاق اعتبار با مقدمات حکمت است دلالت فعل است مطابقت با اصل عملی طبعا وقتی این پنج مبنا رو در نظر گرفتیم در معارزهش با آم و در مقابلش با آم های نتایج فرق خواهد کرد وصل الله علی محمد